بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شغف الأنبياء وفاطم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد دوم جلسة أسأز مروري بر كتاب دكتور صالح السندي كتاب چي هست كنفرانسي بوده أسأل اول مروري شد بر محس عزمتها الله جل بأله وخلقها فلنشش الآن شروع مكرا ما أعلف بمعناي إلحاد بإنك با إلحاد أسكي شروع شده ما هو الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة الميلو عن القصد، ما الله حافظ الشركونه وبر سرات المستقيم الاستقامات بيش بده، يقعد الالحاد اللغات بمعنى ميل انحراف عن راه دروسة ان الالحاد ان الالحاد يمكن الانسان عز راه درسه إن خارج بشي، اما در السلاح رسله شرعي كفتمشي فإنه إنكار وجود الله تبارك وتعالى منكر شدن وجود الله جل وعلا ربيش مجانا الحاد كسي وجود الله تبارك وتعالى الله المتعارى وجودش إيش إنكار بكله والملحدون أم ملحدون الحاد وملحد ملحد كسي ك منحرفه عص راهو جودة خارج شو ذا اللغات فدار السلاح هم الذين لا يؤمنون بوجوده جل وعلا من كسك ايمان بوجود الله جل وعلا لا نداره بل وحدانيته وفي ربيه و اولويته انها اقرار ضروري الله جل وعلا يك تاس ان الخلق و فنش و انها اقرار ضروري مستحق برسش و اولويتهس وهؤلاء الملاحدة يقولون ان الكون وجد بلا خالق إن الملحدين مدعيان الالحاد ادعاء دارن اني حسي ان جهان و ان كيهان آفریده شده بدون خالق و آفریدگار خالقی نبوده آفریدگار نبوده همیتونه خودش وجود اومده کسی نبوده که این امور رو تدبیر بکنه این جهان و هستی رو به وجود بیاره و ماده ازلیه و این هستی و این جهان و کیهان قدمتش عبدیه بوده و خواهد بود و قدیمه و این ماده ازلیه هی الخالق و المخلوق محن این جهان هم خالقه هم مخلوقه این قضیه دیشب بهش برداشتید. آیا میشه این جهان هم خالق باشه هم مخلوق باشه؟ یعنی میشه از خودش، یعنی مثلا به بگیم زمین خودش خالق خودش باشه. میتونه زمین خالق خودش باشه یا مثلا من که جزی از این زمین زمینم، بشم خالق خودم. اینا رو دیشب باثق دادیم که دیگه نیاز به تکرارش نیست. و به فإنهم يكفرون بالرسل ويجحدون الادیان. خب پس اینها پیغمبرانم از بو قبول نداره. هیچ دیانتم قبول نداره. هیچ نه ففي الجملة هم صنفان إنها دو تقولها قلها بعد الصنف الأول من يعتقد بالنافع لله جل وعلا قلها بعد لا سياب الكساني كأصل إيمان بوجود الله جل وعلا نداره والصنف الثاني وهم الذين يطلق عليهم اللا أدرياء قلها دو قلها مك معروف باللا أدرياء كساني كإيمان موجود نادرة وهم الذين يقولون لا أدري هل يوجد رب خالق أم لا أيها الفالخي قفري دياره موجود داريها نادرة ويجمع هؤلاء و عدم الإيمان بالخالق جل وعلا همشون مشتركة تريد نتيجة بهم ديگه مرسل وعنم إنك خالق دياري وجود نداره لكن هؤلاء مع الشك و مع الجزم دسته الأول يقیناً و قطعاً ميگن خداي وجود نداره قوله دوما ميگه ما شك داري ترديد داري بتوين مساءه والبحث هو والواقع يكشفان أن معظم المفكرين الذين أعلنوا الحادهم لم يتمتعوا بالصفة للحاد الموجب كما يقولون ان هيك از فریختگانی که نسبت به علم و دانش بهشون میدن از چه از عدیبان چه از فلاسفه اونهایی که ادعا کردن که ما ملحدیم سوال اینجاست آیا الحادشو واقعا حقیقی بوده آیا واقعا ملحد بوده یا نه یه فقط مجرد ادعاست حرفه ای انهم لم دل نظریت علمیه آیا اونها واقعا طبق اون بینش علمی طبق اون نظریات و اون طوری های حقیقی بوده علمی بوده یا اینکه نه مجرد گفتم همون ازیه اینکه مجرد یک ادعاست و انهم الملحدون الحاده سلبيه ای ها اینها الحادشون از یک زاویه هست از یک زاویه بدبینی بدنگری منفی چرا میگه که انهم يبدون فقط عدم و باطله وجود الله نه فقط ادعا دارن که آقا ادله وجود خالق آفرینگار قطعی نیست چون ادله برای ما قطعی نیست ما قبول نداریم چون ادله برای ما قطعی نیست یعنی شایدم خدا وجود داشته باشه شایدم خدای وجود داشته باشه یعنی نکنید تو این نقطه تو این پرانتز ادله هست که عدله ارائه میشه خیلی از زیانتا وجود دارن میگن خدایی هست کتاب ها هست ولی کنچی ولی کن این ادله عدله برای ما قطعی نیست ما به قناعت نرسیدیم ما به قناعت نرسیدیم وفي هذا يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين إكاس فلاسفية فرنسية وهو موريس بلوندر ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة يك ملحدون عن الحقيقي وواقي وجود نظر وليس ببعيد عما ذكرتوا طائفة من المآحد الفلاسفة الذين قالوا بإثبات خالق لكم ببعيد أمريس ديكاس فلاسفية كي بودان كسان هم بودان كي بالأخر خالقوا فريدقون رقبوا لكنهم زعموا أنه تخلى عن ادعا دارن بعض از اون فلاسفه از اون فلاسفه از فیکسیفان که خالقی بوده این جهان و کیهان را فریده ولیکن چی؟ رهاش کرده به حال خودش آفریده و رهاش کرده ويا اینکه كل افني بعد ان خلقها اینکه خودش اصلا فناء شده از بین رفته نابود شده و ترکه به اسیر به نفسه و جهان را به حال خودش رها کرده که خودش راهش ادامه بده تبار الله عما يقولون علوا كبير الله متعاله از اینکه کار بیودی انجام بده جهانی را بی هدف بیافرینه بعد به حال خودش رها بکنه الله پاک من از این حرف و از این بختان معظمها هم جریمه چه جرم و جنایت بزرگه فالله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا قرامها در سوره مریم و یه اشتاد و دیگه میگه وقال اتخذ الرحمن ولدا نسارا مسیحیا گفتن الله برای خودش فرزندی در نظر گرفته حیسا لقد جئتم شئی ان چه حرف زشت و ناروایی تکاد و سماوات یا تفطر نمی نزیک آسمان شکاف برداره از این هر از این هزیان و تنشق الارض و الجبال الجیبال نسی که زمین نابود بشه زمین شکاف برداره و کوها بری زیرد و تگربون بشه نابود بشه اندعو در رحمانی والده بخاطر این که ادعای فرزندی را برای الله جل و کرده اینها ادعای فرزند برای الله کردن این اینکه الله محتاج یک فرزندی هست دستیاری هست اینها با این حرف الله جل و میگه آسمان ها و زمین خش ورزیدن، از خش بشوند از اینکه که شکاف برداره فکره که به من جهده و به کلیه پس چی میشه؟ یعنی چه موقعی مخلوقات خواهند داشت در مقابله؟ اون کسی که اصلا خالق رو قبول نداره کسی که خالق قبول داره داد داره, داره که فرزند برای خودش در نظر گرفته اینچنین الله جلالا ازش یاد میکنه اما اون کسی که اصلا خالق را قبول نداره پس چی؟ و معلومون انه وجود الالحاد قدیم و فی ناس قریب مسلمان الحاد قدیم آن داد. الان زیاد شده ایب، لام یذهر یا انکار الله سبحان و تعالى. فِالقَدِيمِ إِلَّا شَرْذِمةٌ قَليلَةٌ مِنَ الْبَشَرِ قَدِيمَ. خیلی آن داد. بد کسانی که ملحد باشن با انكار و شنبه وجود الله جلال و غفران. آن داد. ناچیز. مشهورترینشون ترینشون من أشهریم فرعون. پیش زمانی که گفت و ما رب العالمین رب مصابف. پروردگار عالمیان کیه. و ده به ایشکا دلیک فایه تو من الفلاسفة گریاس پیسونیان و زارو. این دعا را کرده و کده طائفت مشکی العرب و همچنین گروهی از مشکین در جزیرات العرب الَّذین يطلق علیهم الدهریه اونایی که دهریه دعا دارن زمان خودش آفریده بخالقینا نداره و هم القائلون بقدم العالم انکار الصانع اونایی که میگن این دنیا قدیمی هست و آفریدگار را انکار میکنن اذا لم يلقه انکار الخالق خالق جل وعلا قدیما رواجا بین الناس پس این فکر الحادی قدی مشروع نبوده. یعنی ما نمی بینیم که شهری کشوری بدون دیانت باشه. هر کشوری برای خودش یک دینی یک آیینی داره. حتی آن کشورهای کفری و شرکی چه هندوستانش با اون، هندوستش و چه تایلند و برما با اون بودایی هاشون. و الى آخر هر کشوری برای خودش یک دینی داره. نبوده شهری کشوری بدون معبدی بدون دیانتی بدون آیینی. و هی ها در یکولو احد معرخی که از های قدیم از تاریخ دانانشون میگه که و هوا لقد وجدد فی تاریخ مدن بلا حسن در طول تاریخ شهرهایی بودن که قلعه ها نداشتن و مدن بلا قصور قصر و خونه و منزلی شاید نداشتن و مدن بلا مدارش یا شهرهایی بدون مدرسه ولیکن نمتوجد ابدا مدن بلا معابد شما شهرین نمیدید فیدا بکنید که معابدی هر جایی با سان جنازهام گش کردن مثلا برای تو فلان شهر اینجا یک معبدیه یک بوتیه یک کسی پر رسیده میشه و دور مردم اونجا مثلا دور اون بوته میچرخیدن نبوده جهان هستی یا این جهانی که ما زندگی می یا این زاگروی زمینی که ما در زندگی می بدون معبدی باشه و اما فی الحدیث الحديث اما الامر قد اختلف اما این زمانه قضیه متفاوته و فمنذ نهاية القرن السابع عشر وفداية القرن الثامن عشر ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده الغرب بدأت بواده وطيارات اعلنت نفي وجود الخالق سبحانه در اسر حديث در این زمانه دور زمان خودمون قصنا نقارن افتهم اشتهم لزوم ميلادي خب بعد این رشد كما در تمدن دیدیم در ساخت و ساز و در تکنولوژی دیدیم خصوصا میان غربی ها میبینیم که این قضیه الحاد داره روشت میکنه داره عوج بیکره داره به نحوی در رسانه ها ترویش میشه که این جای نگرانی رو داره نگران کننده هست چی میشه اون شهرهایی که بدون آین بشن و بدون دین و دیانت بشن دیگه چه تافای داشت آیا خانواده رو تو اون شهر و اون مملکت خواهیم دید؟ آیا خواهیم دید که درها کمتر میشه یا کشت و ها؟ چی میشه؟ اون شهرها و کشورها رو دیدی الله خودش رحم کنه رسول الله صلی الله علیه و آله از نشانهای قیامت میگه میگه که زمانی میرسه که الله الله روی زمین گفته نشه. یعنی این الحاد این قد رشد میکنه تا جایی که بر روی زمین کسی نباشه بگه الله الله. و هذا کان عصر مارکس و داروین و نیتشه و فروید این از بزرگدان فیلسوفان غرب غربه در این زمانه، آن‌هایی قاموا قامو الظواهر تحلیل ظواهر علمی و نفسی و اقتصادیه، این هم تحلیل کارانه غربی بودن از فلسفه. که اومدن بعضی از مسائل روز را از هر از مسائل علمی، نفسی و روانشناسی و اقتصادی و اجتماعی، به طریق لعتقاد خالق قیه اتر با اونم روش خاص خودشونی که خالقی میست که بخواد برنامه بده برای مسائل روز، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی ما این که برنامه میریزیم و ما این که برنامه میدیم با قدسه و پیهال الامر الموقف الهش رو لدیان خب غرب پیشرفتی در صنعتشون داریم میبینیم در همون اصلی که کلیسه ها دارن فرو میباشن در عصر فروپاشی کلیساها، ها شما می بینید که در میان خودشون کسانی هستند که روی گردان میشن از کلیسا. خصوصا در عباسط قرن میلادی یعنی شما در این 2000 سال میلادی شما می که از هزاره دوم خب این اوج الحاد داره روز بروز بیشتر میشه در میان اونها و آج میگیره نتیجه لحروب و جرایم و انتهاکات انی که اروپا به اسم تیمون بخاطر چی بوده بخاطر دعواها و هایی که در اروپا بوده بخاطر جرم و ها، بخاطر حرمت شکنی ها شما الان 50 سال 100 سال, سال اروپا رو دقیقا آر میبینید جنگ جهانی اول دوم مسلمان ها بگه دست داشتن مسلمان ها کجا بودن جنگ جهانی اول و دوم چقدر کشته شدن همیشه که مسلمان ها همدیگه رو میکشن تو افغانستان تو, تو سوریه است مصلبنا وحشیان، مصلبنا منافقان. 2000 سال, سال تاریخ خودتون رو فراموش کردید. الان هم اگر جنگ هست، غربی‌ها میان بین ما جنگ انداختن و اسلحه دارن میدن و گروه هایی رو دارن تامین میکنن از راز صلاح و سعی میکنن که امنیت ما را از بین ببرن، ما رو به جون هم دیگه اندازن، حالا به اسم شیعه، اسم سنی، به اسم داعش، اسم القاعده، اسم, اسم غیر. مردم رو بدون هم دیگه اندازن و به ما اسلحه میدن که خونه هم دیگه رو بریزیم چون براشون ارزشی نداری. خب قبلا خودشون اینطوری بودن این خودشون برای خودشون ارزشی قائل نبودن همدیگر رو میکشند خونا رو میریختن. این نمیدونم چک چه پاسلواکی چه این آلبانه این یونان این رومه چه جنگهایی ما داشتیم؟ در میان خ خود رومانی ها در میان همین رومانی یونانی ها شما بره تاریخ را بخورید اصلا خود ایسا مسیح وقتی که ظهور میکنه وقتی که تولد میشه وقتی در اوج اون جنگهایی که بین یهود بوده در میان یهود و بین اون که یعنی کشی راه انداخته بودن الله! یک نجات بخشی را به اسم عیسی علیه السلام میفرسته در یک بره از زبانی بود که یهود در پنشیش مرحله زیر ظلم و ستم امپراتورهایی ما قبل خودشون بودن یعنی امپراتورهایی که مثل امپراتوری یا بختانس یونانی یا اون رومانی ها خصوصا بومبی و غیر و بعد از اونها خصوصا آدریانوس با از به بردن حیکل سلیمان اون معبد که کعبه و قبلگاری که در اورشلیم در بیت المقدس سلیمان بنا کرده بود نابود میکنه اصلا چی میکنه این آدریانوس اصلا یهود اصلا نمیذاره که نزدیک فلستین بشن خب اینا همه جنگ ها بود نمیدونم کشت بود که در جهان غرب خصوصا در بین رومانی ها و یونانی ها رغ میداد و قش قشرهایی که که انجام میدادند و بعد ها شد به جنگ های سلیبی بر علیه مسلمان ها که اومد صلاح الدین ایوبی و امثال اینها با اینها مقابله کرده و همش در زمان عمر بن خطاب و خالد بن الولید و غیره برای تا به اونها میفرستن پس حرمت نکنی ها و و جرم جنایت غرب بیش از اونه که ما بخوام اینجا در این مجلس یادش رو کنیم بمب هیدروژنی بمب اتمی رو ما نساختیم مسلمانان کی شما رو مالی زدن کی زد مسلمانو زدن اونایی که ایمان با الله داشتن کسی که ایمان به الله رو داره میاد بشر با اینجوری تار و مار بکنه و رو بکشه پیبو رو بکشه زول بکنه کنه اصلا این دین ما اینجوری میپذیره زلی اهل عبادته تواد میاد یکی از اصحاب رسول صلی الله علیه و آله میگه فلانی خیلی عبادت میکنه ولی گربه رو حبس کرده بعد اون گربه از برس دیگه مورد رسول اصلا دیگه از ان جهنمه خاطر یک گربه به خاطر یک گربه گوربه را در خونه رو میبنده، از براستی گربه نمی‌گیره زنی اهل فساده فسق فجوره سگی را آب میده. اون زن میشه به هشتی خدا برا اون مالشو می‌بخشه به خاطر اون رحمی که نسبت به یک همون داره این دین ماست شما نگید که داعش میکنه می‌کنه نمی‌دونم داعش رو میزنه، فلان میکنه این چهره‌ای که اینا ساختن این چهره شما سه سال قبل میدیدید دنیای بسره‌ها دویست سال میدیدید. دوران اول بود ی دوران ما را خطاب و یه دوران علی بن ابی طالبی و عثمان بن عفان دوران کودکی گاز صحابه و خلافه راشدین بود. آو بکر سر دیگه ریش و کردن فدرش رو که رفته در فتح مکه بعد از 20 سال نبرده با مشرکی بس با رسول میگه کو سب کنه او بکر من باه بیام پیش فدرت نه فدرت بیاد پیش من. این چیه؟ توکر رسول الله سام دشمنش 20 سال باز زنگیده ولی که رسول الله میگه من باه برم پیشش. یهودیه داره سنگ پرت میکنه داره نعشیم نیز برای کشتار رسول الله عليه وسلم بعد الله الله علیه و سلم میادی بعدشش ملیز میگه بعد نه چرا و و بغض الله جل و علی یا اینکه با خوشونتی رفتار بکنیم یا اینکه بخوام چگونه بود در رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه عمره نکرد. به وسیله که صلح می‌کنه یهود بودن بنی خورزه و غیره بنی نظیر و, و همینا بودن در بر رسول صلی الله علیه تا وقتی قد نکرده بودن، خیانت نکرده بودن، اگه رسول صلی الله علیه و آله بهنوا جنگید. اصلاً جنگی نبود. صلح بود. با اینکه به رسول صلی الله علیه و آله مولا بود. بس شهری اسلام شهری فاضله. هیچ وقت اسلام را با اون مسلمان ختاکان قیاس ن اسلام یه چیزیه مسلمان ما یه چیز است مسلمان شد هزار تا خطا انجام بده گناهی یک مسلمان را سر اسلام خالی نگیری به سبب تعامل کلیسای کاتولیکیه فی حق ما غرق هرطقه و خروجاً عن مبادئ خصوصا زمانی که مثلا شما در یونان میبینید که ادعا داره خصوصاً کلیسای کاتولیک الا ما ستا کلیسای معروف داریم پروتستانت و کاتولیک و ارتدوکس خب که کلیس در روم ادعا دارن که خودشون باید مرکزیت عالم داشته باشن و بقیه کلیسه ها بهشون بر بگردن مثلا در اصل امروز روز جنگی که دارید بین ها و بین اخرانی ها خب تو تا کلیس های متفاوته از این کلیس ها شما مثلا دارید و از اون طرف ماکنن کاتولیک دارید به جنگ همدیگر میاد میگه مصعبا رفتو میرزه میگه مصعبون درست شد دو سخته یکی از اونا کمک بگیره از دیگری بیاد اسم اسلام تو وسط می بکشونه ولی که اون جریان جنگ یک مبدا کلیسایی داره یک مبدا کلیسایی داره یعنی جنگ میان خود کلیساها است میان خود مسیجا است میان و صلیب‌ها اصل جنگ اصل میدان جنگ که داره زنده میشه بوده از قبل و الان نمونه ای از اون جنگها رو داریم ما ببینیم چون اعلام هست چون رسانه هست ولم یقف الامرو عند الغلماء التجریبین او نفسانین او اجتماعین بل تعداهون الالگدباء الذین اعلنوما اسمهو فکرات وفات الدین والخالق بگه تنها این اندیشمندانه نمیدونم علوم روز از چه رماشناسی گرفته و چه علوم اجتماع و اختصال تنها میان اینها نبود بلکه نزد فرهنگیان از اون ادباب و از اون شعرا هم شما می بینید که مثلا این سخنان رو میون می می‌بینی به سبب میارن فکر وقات دین یا از, از یا مردن دین و خالق و آفریدگار و ان دین ابعد الانسان انسانی... انسانیت انسان این انسان دین سبب شده که از انسانیت خودش به دور بره فاصله بگیره یعنی بحث انسانیت را مطرح میکنن انسانیت این شعار شده انسان، این به وقتش ان به وسیل انسانیت و این شعار و این گفته خواهیم فرداخت. به فردی قوانین عرض طبیعت البشر حریه و سعادت انسان، دین مرفض با طبیعت بشری، طبیعت آزادی انسان و خوشبختی انسان. یعنی ادعا دارن که اونها میخوان بدون دین ما رو خوشبخت بکنه. بدون دین با آزادی که به ما خواهند داد میخوام ما رو خوشبخت بکنه. یعنی خوشبختی در لادینیه. اینو میخوام بهمون برسونم. میشه وقتی انسان خوشبخت بشه بدینی دی. میشه انسان مثلا پدر خوشبختی بکنه تنگامی که پسر بیاد چاقو رو برداره پدر اپنه میخوام بکشمش میکشمش کی گفته که خوشتن بده میخوام بکشمش دلم میخواد بکشمش کسی هم نیست دست خوش ایمان به روز آخرت هم که نداره دینی نیست نیست خب این عواقبشه عواقب این فکر لا دینی وقت تزامنت ها خوسته میگه این بحث ها قاطی شده و خوسته با اون نظر پردازی های توریه های داروین که مشهوره که انسان میگونه اصلش رو نمیدونه میگونه پیشرفته است که رسیده و هللی التي كانت مناقضه تمام نظریه نشوء الكون فی کتاب مقدس عند النصارى خوسته این نظریه که در تضاد و اون چیزی که در کتاب مقدس است در انجیل هست و در تورات هست که انسان اصلش از آدم و آدم الله خودش با دست خودش او آفریده با این که با این چیزی که در قرآن را به گیه گوشه و در تورات و در انجیل هم این اصل خلقت ها اشاره شده با اصل این هم معارضت میکنن مخالفت میکنن سبحان الله یعنی این مجرد یک ادعا هست مجرد یک تخمین یعنی شما مثلا نگاه کنید مؤسساتی که هستن مثل بانک های دین ای که در غرب هست خب با, با ابن روز مثلا این مسئله رو مثلا بیام ثابت بکنم برنامه ام ژنتیک هست خب بانک های ژنتیکی چطور می کنن بانک های ژنتیکی مثلا من جین های من چیزی به اسم DNA و RNA وجود داره خب در این DNA و RNA قشنگ نسل من حفظ میشه مثلا من ژن تو من حفظ شده ژن پدر بزرگم تو من حفظ شده تا به آدم میرسه ژن ها حفظ شدن مثلا بفرض من اگر با یک شخص X مثلا میخوام بدونم تو چه تو چه جدی به هم دیگه میرسه میتونه از طریق بانک های دین ای با هم دیگه برسه مثلا یک کسی پدرش گم کرده پدر بزرگش گم کرده نسلش جدش گم کرده قشنگ از طریق بانک های دین ای میتونه به پدرش برسه و پیدا بکنه پدرش رو شما مثلا یک از مشهورترین این بانک ها فامیلی دین ای هست در در شهر بولتون و آمریکا خب شما بلیط راهی تلفن سیار شو فامیلی دین ای فامیلی دی ای یعنی چه خانواده دی ای که تو اصلی قانون فامیلی دی ای به خانوادهت برسید بدونید از کجا آمدی از کسن تو قبل که زنا هم از شخصی مثلا میاد با یک زنی زنا میکنه بعد بچهشو به دنیا میکنه مثلا فرسان تو مسافرت تو قضیه زیاد پیش میاد از انگلیس بودن شده رفت آمریکا و یک زنی زنا کرده و بعد بچه به وجود اومده بچه‌ام بی پدره میخواد بدونید کلا اصلاش از کجا است اثر این بانک ها میتونه در بیاره برادرانش خواهرانش عموهاش و الی اخر میتونه در بیاره که از کجا بوده ریشه‌اش کجا بوده چرا تو نسل من هرس شده و مشخصه خب چرا این DNA RNA که در من هرس شده به میمون نمی‌رسه؟ می‌رسه به یک شخصی به اسم همه متفقن تو این DNA RNA که تو من وجود داره تو این پله مانند مارپیچی که از DNA RNA تشکیل شده توی سلوله‌های من چرا به یک جای خط می‌شه؟ چرا بعد از آدم دیگه نابیده نمی‌کنی؟ تمام بشر رو شما بیاری؟ این پله‌های DNA RNA مبدا و مقصدی دارن یک جایی میرسن انتها دارن ابتدا داره از من مثلا بلفراس اگر بخوشت شروع بکنی میرسی آخرش با آدم همه میرسن به یک جا از وجه مشترکش یعنی هیچ کس از ما دینش مثل دیگری نیست یک جای تفاوت هست مثلا من مال برادر مثلا من و برادرم دو تا ژن مختلفی از من خودم مثلا از, از اون سلولای خودم مثلا مال من متوجه است برادرم ولی مال پدرمون خب مال پدر پدر بزرگم هم این دو تا می رسه با آدم راحت میتونن بشرم هم دیگه رو پیدا بکنن و بدونن در چه نسلی هستن به هم دیگه ملسن. خب یک علم روزه. چرا مثلا این علم رو نمیان بولدش بکنن، بزرگش بکنن مثلا بیام بگن آه این علمم هم هست. این تئوری که این آقا داده، آقا داروین داده، این اصلا تئوری هستن با علم روز اصلا منافاته داره. چرا نمیان جوابش بکنن؟ چرا شما الان خودتون اومدید، بانک دینه‌ای رو زدین، بعد دارید که میتونید خانواده رو به هم دیگه وصلش بکنید؟ بعد از این طرف دیگه الان میگی اصل انسان میمونه این دوتا اصلا نمیشه با هم دیگه کرد چطور تو دانشگاه شما درس میدید از یه طرف علم تجربی که تجربه این میگه که انسان ابتدا منتهایی داره بعد شما میگی دیگه نه ابتدا نداره انسان بلکه منو بوده پیشرفت کرده و اخر از قبل بوده به همین طور میتونه رسید شده انسان چطور انسان بوده چه بوده بعدا میتوره پیشافتاده شده انسان اولش چرا این سوالی عوض نمیشه هم مثلا من چرا فری میشه؟ لازم قرثی پیدا و مثلا باشه مثلا حاذمیون مثلا چرده چرنده سعی یک تئوری یه که اصلا منافات داره با علم و دانش روز ميگه میشه میگه میشه که میمون بشه عقلش مثلا خب این میمون در اختیار شما بکنید ادیسونش شما میتونید دیگه شما میگید که اصلا میتونی پیشرفت بکنی میمو میتونه پیشرفت بکنه بذارید اون به دانشگاه ها این میمون در اختیارش رو ما قرار میدیم بیاد اون مغزشو پیوند بدید نمیدارم هر کاری دوست دارید درخت دو میشه پیوند داد بیاد پیوند شدی دسته جلوش رو بگیرید اون ها اون دینه واره نه بهتره این میمونه بشه انسان آگاه بفهمه بخونه بیاد مطالعه بکنه کتاب برداره قلم برداره بینی بیسه شن نمیکنی نمیشه کرامت انسانی را در زیب سپری انسان درک انسان چیزی وقتی که الله جدبانه مطرح میکنه به فرشتگان زمانی که آدم آخه میکنه چی میگه به فرشتگانش وقتی گفت که, که چرا این مخلوق رو میاخره که فساد بکنه میگه الله چی جوابشو میده میگه که آدم, آدم همه اسمای همه چیزا رو یاد داد دانش رو یاد داد انسان میتونه بدانه میتونه یاد بیکنه میتونه یاد بده میتونه می بگه، میتونه بشنده، میتونه نوت بک شاید هیون نوت بک ولی نمی‌تونه درد بکنه که این نوت، این کلمه، این قلمه وقتی گفته میشه این کلمه. من می می قلم. من میتونم درد بکنم. ولی این اون هیون میتونه شاید بتونه در یک محدوده ظریفی، کوچیکی، یک زاویه‌ای بهش بگه رو قلم بیاد این کلمه رو بفهمه. ولی میتونه این ilmu رو، دانش رو پیشرفت بده. میتونه مثلا یک کتابی رو بشنی بشنی بشنی مثلا دیکته بهش میبینی مثلا ربات که نیست. ایک هیمون با یک مغز کوچکیه چطور میتونه این مغز کوچک پیشرفت بکنه بشه انسان بس ما کرامت ما غیر از ما غیری الله جل و علم مکرممون کرده با یک آفاینشی دیگه با یک خلقتی دیگه ما خلقتمون آفرنشمون با اون قلب و اون جسمی در اختیارمون هست و اون عقل و خردمون متفاوتی از دیگرم خلق الله جل و علم و کدر اکی فقط اعلن نیچه مقالته و جمله ون الفلسفيه فريد نيتشه مشهورة مقاله المشهور اللي داره باسم موت الخالق مردن مردنه اخريدار بزرگ ومقالته الاخرى یک مقاله دیگه هم داره ان الدين فكره عبثيه وجريمه ضد الحياة دين یک فكر به هیاس و یک جرم ضد إنسانيات ضد زندگي جرم دين ضد جرم خيلي از ما عادت شد خيلي جارمون عادت شدي ببیني گفتم میلی اون درست اشاره کردم هجاب سوزی و بحث شعار آزادی یک کوشین از ضایی از هست جا وقتی که برای دین تن بشه من دعوت دین ندم مردم بشم دیین ایننمونهش دون چه چش می خود می توش جااب هممو میره او هم بیات اون از میره هر کدوم فکر میکنه بهتره الان حجاب داره می سوزنونه بی حجاب اومد چیکار میخواد بکنه؟ چی میخواد چی آینی میخواد بیاره؟ چی میخواد بکنه با مردهاش دیگه رحم میکنه، دیگه چه دیدگاهی خواهد داشت در مقابل دیگران با اون شعار آزادی آزادم دیگه آزادم بکشم، آزادم، هر کاری دوستم دو فقط تجاوز بکنم و الى آخری و هاکده اخدت افکار الملحدین فی ها دهی المرحله منحنا نفور من الدین اینچه این نفرت هستین گسترش بیدا کرد لتناقضی العقد انها تصارفاتی و تعالیم کلیسا اونم بشتر بقاطر این بود که قابل هست های نب اون که در کنیسه ها گفته میشد برای اینا قابل هست نبود بخاطر هم بدن باش مخالفت کردن و مبارزه کرد. کما اعلنه مارکس ایضا نظریت المشدور مارکس هم از بزرگانشون از فلاسبه میاد یک نظریه معروفی میده لا اله و الحیات ماده. الهی معبودی وجود نداره و زندگی هم ماده است. و اعتبره دین افیانشو و دین را عنوان مواد مخدر تریاک توبیت ها و جامعه رو معرفی میکن یک فیونه، یک تریاکه، یک معاد مخدری هستیم یه چیز، یه چیزی که م را از انسان میگیره و انسان در آن حود میبره هو فی زم یجعل على شعب کسودن و غیر مؤمن و قدرتی که تغییر وقع چون انسان دین سبب میشه که دست بقی در نکنه تنبل بشه و ایمان به قدرت ها و توانایی هاش نداشته باشه خب بعد از مارتوسش ما فروی فروید برید و غارتقدرلت فروید نظری که التي ظ ان دی و فرود میاد ادام میکنه که که دین یک تباهمه تباهمی که بشر محتاجش بودن کنه تلبشریه به حاجت الیه ویدایت بشر محتاج دین بوده که زندگیش رو باش بچن و وانا فکرت وجود الیله یا محاولتو من اللاوعی به الکمل میگه که فکر وجود خداوندی یک فکر یک اونا دا یک فکری از بیخردانی که سعی میکنن خودشون رو به کمال برسونن فاي सेम يكون اخذوش بالتكامل برسونا ميخردا في شخص هو مثلا اعلى بديل لشخصيه الاب مثل هيك شخص بيصدق شيء فدال دوره قدره شو كامل بيبينه متكامل بيبينه وليه وقتي كخودش بظرق ميبينه لا قدره شو كامل إذ أن الانسان في, في طفولته ينظر الى والديه كشخص متكامل وخارق انسان بيعد بقدره شو نظر ببرجغي ولكن بعد فتره يدرك انه لا يوجد حل اون کسی که بی خرده میاد دنبال یک راه و چاره میگرده برای اینکه پیدا بکنه مشکل را حل بکنه بخلق صورت وهمیت یا شید میاد در عالم وهم خودش یک تصور را سازه یک تصور وهمی از اون کمال و یضافه الى ما سبق انه ثمت تغییرات تغییرات سیاسی شهدت فرانسه بعد ثورت فرانسیه. ناسیه خصوصاً باقتی که ما ثامن سر می‌گم می‌کنیم، وقتی که اوج اون صنعت و تکنولوژی رو تغییر و که در روز دیدیم، می‌ناسبه این زمانه خودمون، دیدیم که خب اون فکر الادینی درشون، به اوج میرسه. خودشان در اون اطلاعی که در فرانسه میشه، و کدالتر حالوی بریتانیا، همچین در انگلیس و غیره هم البلدان بله و همچین در دیگر و کشورهای اروپایی، حیث که آن مناق اتجاه و ساده، اون فصل دین علی که داشته، باجدا اصراری دین و سیاست. وهكذا بدأ الإلحاد المعاصر في الغرب إن شئين، فإن اسمه الحاضر أوج الحضرة دار غرب مبين، وهكذا انتشر سريع إن شئين بسرعة درجة ناش فيهم يكون انتشار ميابي حتى وصلنا إلى هذه السنوات الأخيرة التي فيها بدأ فيها بريق الإلحاد يتوهج الآن خصنا داري صلها مبين كه خصنا داري درج جهاب مبين كه درج شو لفالم براق مجن كذي الإلحاد. بچه تو می‌پلیسی مدرسی، بچه تو می‌پلیسی زن رجبا. آخر چی در میاد؟ فروید گفته، این فروید، نظریهش، اون تهوریش، اصلا قابل نقاش نیست نه نیچه گفته، اصلا نیچه رو بالاتر از قرآن و بالاخر از هر پیغمبری می‌بینه اصلا اینقدر خصوصا در این فلاسفه غلوف می‌شه اینقدر این‌ها بیان، بیان، القاب میدن و بزرگ جلبه میدن در ذهن دانشجو، و دانش آموز انگار که این‌ها خدا خدای فکرام، خدای فلسفه‌ام. اینجینی مثلا اونها ها رو وان مود میده، وان میکنن. خب با بزرگ کردن این اشخاص، اومدن چی؟ اومدن فکر را به ما تزریق کردن. بعد فتره رکود، تبعات سقوط دولت راعيه للالحاد الداعمه له هي اللي اتحادثوا بعد سقوط خصوصا سقوطه، کشور شوروی سابق، کشور کمونیستی سابق که مدعی لادینی بود، مدعی بی خدایی بود خب دوباره فرانسه و انگلیسی بعد دامن زدم به فکر الحادی و شروع کردم به ترویجش بعد از اینکه اون کشوری که متولی این فکر بود سقوط پیدا کرد خب وقتی لالحصات فانا انتشار الالحادی فی العالم به صورت خطیره خب اینجا یک سرشماری میکنه تقریبا مؤسساتی که در غرب هستن میاد سرشماری میکنه از الحاد امروز در جهان چطور داره ترویج پیدا میکنه و چقدر ما ملحد داریم خط مؤلف من هذه الأحصاء ما قامت به مؤسسة يوربا روميتر، أي مؤسسة يوربا روميتر بجانب جملة 18 ماريك وهي من كبريات المؤسسات الاحصائية في الأحصائية أوروبية كمؤسسة 18 ماريك بوزارة دولة أوروبا بجانب تذكرت أن ثمانية عشر من سكان أوروبا في عام 2005 أصبحوا ملاحدة لا يؤمنون بوجود خالق اجتهد أرسل إزماردون دولة دار أوروبا دارس وزير بانش ملحدا أي وجود خالقنا هذا و 20 منهم لا يؤمنون بخالق بسیار افتادن ایمان به خالق ندارند و انما بهنون به عالم روحانی بلکه ایمان به عالم روحانی دارند و قوته و رای حیاتی قوته انرژیک توانی خارج از سویت وجود داره ولی خب چی هست نمی‌دونید یادرید 27 درصد خیلی زیاده جامعه بدون دی باشه و منها ایضا احصائيات مؤسسات امسوس رید سازمان رید از این مؤسسه میگه این مؤسسه مشهوره مختص فی استطلاعات رای ما سازمان رید نظر پردوسی و نگرش های مردم رو سازمانی می‌کنم. ذکرته که في كندا ملحده در کانادا این ما سیمیکده تعداد در سال 2011 میلیارد در در مردم در کانادا و که ما ذكرت فاینل ان تامس 65 من اصبحوا في عام مردم ژاپن در سال ده ده ملحد شده. أم الحداثة، وكذا إحصائية مؤسسة Angel التي ذكرت أن عدد المراحل يزداد في المكسيك بنسبة 5.2% فاصلة اثنين بالمئة. توجد لهم دراسات ترى رش مكونها مو أي سالانة، ترى إن ملحدين رش مكوناً، المعادلة بين وجودهم في المكسيك. شو هر سال تنجذر سادة زاقي دربيشة الملحدين كن دربيشة دربيشة، فمديك تين دربيشة نخافه بتدربيشة. وقال ذكرت احصائيات أخرى أن نسبة الملاحدة في الصين ما بين 8 إلى 14 مئات بعد سرشماريات، يعتقد أنه في شين، بين 14 درسات ملحدة وجود دارهم ناريك عن أن الكثير من البودئين وهم أعدادها إلاهم في الحقيقة تمرين الملاحدة لغا لذلك أساس ديانات البودئية، أساسها الحادة أما قناة بي بي سي فقد توصلت إلى أن 9% من الأمريكيين ملاحد. قرأت بي بي سي 13 مارس 2021 إنه ده سد أميركي يابي كما ذكرت إحصائيات أخرى رسمية وشبه رسمية أن الحادث في الولايات المتحدة ينمو وتيرة سريعة بعض سقطت يارد كهرباء. رشد كندادي دار الحادثة في أمريكا وأن 55 من الملاحد ولا أدريا تقل أعمارهم عن 35 سنة. عن جاپان ده سد الملحدين ملحدين عمره شو كم تلات، بوينت تلات سيمين ساله. وأن الجامعات الأمريكية مرة من خصوب هذا التجار أو ما دقيق كامله ماسستها أو نزشي دانجيكا هذا في أمريكا درب دريكه، إيه فكرة جامع جامع هذا كله عنده غير المسلمين آمين الناس غيرهم مسلموناج عن العالم الإسلامي هذا مسلمون وشيء إن المتتبع للتاريخ الإسلامي يجد حالة فردية وشادة لأناس الذين ارتدوا للإلحاد التاريخ الإسلامي، كما مبين لا يريد أن نخيل، شماري أرسل كذلك، أدواء ملحد شده من أشهر أولئك أظن هم ابن الروادي الملحد ابن الروادي أظن هم ملحد والذي كان يهوديا يهودي بود ثم أعلن الإسلام ثم تهوّد ثم ألحب مسلمون ليس أدواء الإسلامي، ولكن سفر يهودي ليس أدواء الإلحاد اما الالحاد ویده اما و این لباس جامعید شدید روس الالحاد جديد فإنه فإن الى العالم من متاسف القابل تاسه عشان خوصا در قرمه نزام خوصا از اواسطه هم نزام به باته بحس آزاد اندیشی و اندیشی مدعومه من الاسلامات خوصا که ك... کشور رای ميان از اینا حمایت میکنه خصوصا وقتی که ما بچه‌هامون میفرستیم اروپا نه اینا تربیت میشن خب دانشجونا چی تربیت میشن مغلطه بغطاء تغریب و دعوه الى التحرر و نه حرفشون سخنشون بحث خصوصا اون دانشجو ما نمیگه غرض زده میشه چیه آزاد بشیم آزاد اندیشه باشین داشته باشیم تو جامعه خودمون آزادی داشته و والعقلانيه رو بدايه خصوصا بحث روشنفکری بحث عقلانیت اینا مثلا شاخص ها اصلا اینا کلماتی هستن که خوصا میان ما تو بین دانشگاهی ها بلده و رنگ بسر خیالیت بسر روشن فکریه کجاش بسر فکریه میمون شدن نه، میمون بوده هم روشن فکریه یا خاموش فکریه یک تاریکی محض و الله اصلا بسر رو بکنه مثلا جدش مثلا میمون بوده یا یکی از اجدادش مثلا میمون بوده این کجاش؟ روشة فكرية باخلانية خو باخلانية بس إذا تجونش قاعد تجنبو كنيدون ماستا تزجليتي كتوم جنبو كنيدي كده بس هو لا ينور الحاد ميلا وجود الله نهاية يعني انهاز عقلانية شروم يكونا بروشة فكرية أو خارجية الحاد الحاد بإنكار با وجود الله يكتب وقد حفرت التاريخ والمعاصر أسمان كثيرة حجزت نفسها مكانا في سجدة الحاد المظلم خب ما هذا الدكتور في الإسلام ميبينا يعني إذاين در یک تاریکی دارید، خصوصا روشدی که این حد دارید، من الداعمین، من الدعین، المتحمسین اللہ و المقعدین و المؤثرین الوصول خیلی روشد، کسان درم که این روشد فکر این اهل قلم بودند، متاسلوی ها شدند، امیدن سنگینا رو بسیدند، از حسین، اینگلیس یا فرانسی میرند، اینجا بعد میاد لباس دین رو در برای بعد میگه که من بدینم من این دینو قبول ندارم و الی الاخره زیاد بودن از اینا اینهایی که غرض زده شدن ولا اظن احد ان عالم الاسلام حتماs يتأثروا بالمد الاحادي الغبي شكيا من غيري که ما هم بچه‌هامون تحت تاثیر این فک واقع شدن و میشن بیشتر از این نظرا لهذا التضارب الكبير والتواصل الواسع بينكم و بين اصحاب الحديث الاسنهای که وجود داره کانالهای اجتماعی که وجود داره ارتباطاتی که بچه همون با هم دیگه داره خصیصا در قشر دانشجو در قشر فرهنگیان این قضیه بیشتر داره روش میکنه و بیشتر از این رشد خواهد کرد الله با روز این جامعه ره بکنه یک چیزی که ما داریم میبینیم در جامعه یک بدبیری هست نسبت به دین و یک زاویه تنگی نسبت به دین ایجاد کردن حال یه قسمتش بحث سیاسیه، بحث روزه، مثل جنهایی که شده و خودشون ایجاد کردن چه در عراقش چه در آافستانش ما رو بدون هم دیگر داخت کنال چه بحثش یه بهستانیش و چه بحث دیگهش یه قسمتی یک سوویش بینه. زاویه دیگر بحث بحث, بحث، گفتم من فین هست بحث سو زنه حالا چه نسبت به چه نسبت به آین دینمون، اسلام. که در ذهن بچه خونده میشه به اسم انسانیت به اسم روشن فکری یک قسمتش هم اینه یعنی انگار که من تحصیل کرده مثلا به فرض دکترهای خودم رو گرفتم در زاوی الهیات انگار که من یک انسانی نفهم بیخرت انگار هیچ هیچی از دنیا نمیفهمم انگار که هیچ دانشی ندارم و هیچ حرفی برای گفتن ندارم اونها نگاهشون یک شخص دیندار و یک شخصی شخص که حالا مطالعه تحقیق انسان با حرف با مدرک داره حرف زنیم ما چیش مون نبستیم از دنیا ما چیش از فروید نبستیم از هر و نه ما از اینکه نداریم که هر اینجا بزنیم این بگی مگه ترس داریم از اینکه هر اینجا بیام در خانه علمی بحث و بررسی میکنیم نه خدا ترسیم نداریم چیش مون بازه ما نمیمادیم اینجا تو سری بزنیم اینو اون تحقیق میکنیم اون شرانتی ما رو تحقیق میکنیم اینها تندروگان اینها اسلام گرایا هستن که مردم رو حال این کشوندن، مردم بدبخت کردن، خار کردن، نابود کردن، به فقر کشوندن، به فلاکت کشوندن؟ ببخشید، اون کسی که تصادف میکنه تو خیام میزنه ماشین ماشینی دیگری حواسش پرده تو موبایله مقصر کیه؟ مقصر ریش منه؟ یا درس اون آموزه هایی که من دیدم؟ آیا اون ای که داره اون ماشین بیکیپیت تولید میکنه؟ منم؟ آیا اون کسی که اون وسیله نقلیه را دست یک بیخرت میده و یا میخواد اجازه میده که رانندگی بکنه و بزنه ماشین دیگری من بودم من مقصرم میگه کل اون جریان اون حوادث اون کشت، کشتار یا ظلم متعدی و, و دوز و دزدی میگه خطاهای بشری مقصر دینه میگه دینو مگه گفته که بزن آقا بزن به ماشین دیگری که شما میگید آقا مشکلمون از دینه توری نیست چرا همیشه ما سعی میکنیم تو تو زمین اسلام بندازیم همیشه اسلام رو مقصر میداریم بشر خطا میکنه خطای بشر مشکلش مقصرش اسلامه آیین اسلامه بله میان مثلا بلدش بیکنن آیین اسلام بگه که آین اسلام خشونت، آیین اسلام خود قرآنه میوه و قاتل لنینا کفر و قاتلون اشریکین و قاتل و یا میاد یک زاویه دیگه خداوند خودش از خوش معرفی میکنه شدید العقاب شدید العذاب این جهنم این جهنم این توریه جهنم میکشم میندازم سبحان الله خدای تو اینجوری تصور کردی از چه زمین اومدی قرار خودی کی به بیاد داد کی به هدگو پایی سخنی کی نشستی پای کاران معواره پیرانت نشنال نشستی و ازره نشستی این جرم جناهت یهود که با اون فکر ماسونی شد دارن جامعه رو سوق میدن بسیوی بیدینی به اسم آزادی سوق میدن به بندواری اینها شدن مرجع ما دلیل ما اینجینی دارن دین ما دارن با ما مع اگه رو کاری، یکم بیان دور اندیش باشیم به آیندهمون بنگریم، فکر کنیم. آیا واقعاً خدا که اینا معرفی میکنن از ما، از دین ما، از اسلام ما اینجوری جلوه میدن؟ آیا واقعاً این حرفشون درسته؟ آیا واقعاً اینجوری دلمون داره میگه؟ آیا خداوندی که تو قرآن ازش یاد شده، خداوند ظالمیه که گفته که باید بکشید، مردونو بفنگید دو فلان بکنید و بهنام بکنید دو, بکنی دو بیزار؟ آیا واقعاً اینا؟ سبحان الله من تو بعض از درس‌ها این دانشمند و اندیشمند و فرهیخته و نخبه آمریکا چندین بار در درستاتم گفتن باستن این نخبه فیزیک متفکر آمریکا که یکی از احلام و بزرگان علم روز علم فیزیک در, در آمریکا تو درس قصص گفتن و بعضی از درس ها به ششاره لانگ این فیزیکدان میاد قرآن رو میخونه قرآن رو میکنه میگه تو ذهن خودم تصوار من از خدا این بود که خدا چرا ما را خلقت کرده، چرا ما را آفریده. میگه ما تا بچه بودیم، تا خواهر برادر، پدرمون ما مشروب میخود، میومد ما را دارا کتک میزد و دوشاره ظلمی شدیم کتک و اینا. همیشه یه به خودم میگفتم که چرا مثلا ما باید این چینین کتک بخوریم، مثلا چرا مثلا به وجود بیا که این کتک بخوریم؟ همیشه میگه تصوارم از وجود وجودمون این بود. میگه خب یک روزی تو دانشگا یک کتاب از قرآنو دیدم شروع کردم مطالعه کردن تا رسیدم میگه که من خلاصش میگم رسیدم بفرودی الله جل وعلا و قال ربك للملائكه اني جاءا في الارض خليفه قال ان تجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدم ورا سيدنا بين ايات که خب فرشتگان وقتی که ادمو الله خلقت میکنه میگه که اعتراض کردن به الله جل وعلا چرا داری ادمو خلقت میکنی و قرار که فساپو، و فسا هم میکنن این خلقی مخلوقه که دلیل به اراده بهش میدی اینا این کارا رو میکنن مي میگه بعد خود خب دیگه رفتم دیگه الله جل وعلا جوابش اومید به سوال خودم داد سوال ملائکه دیدم خب میگه بعد دیدم که الله جل وعلا در جوابش میگه انا اعلم و لا تعلم من میدونه چیزی که شما نمیدونید و علّم آدم الاسماء كلها میگه بعد الله میگه که به بخ... آدم همه چیزا اسم همه چیزا یاد دادم. و میاد الله جل وعلا از هدف خلقتش اونقدر شویه یک انسانی که بیا موزه، یاد بگیره، تمدونی برای خودش بسازه، فرهنگی بسازه، کتابی، تحقیقی الله جل و میخواد این مماد شکوه از دانش و پیشرفت میخواد در خلقتش، در آفرینشش ببینه که بندگانی که می آفرینه چگونه میان پیشرفت میکنه چگونه میان تحقیق و پجوهش میکنه، هدف این بوده نه هدف این که بیاد الله جل و مخلوق را بیا آفرینه بعد اون مخلوقه بیاد کشت و کشتار بکنه نه این خصوصاً آن اون سؤال قسمت از زاویه رو میخوام بهش برسم که بخصه این که خدایی که برای ما مطرح کردن سوال چی بود؟ سوال اینه که چرا خداوند از خودش یک شهره زالمی نمایان میکنه معرفی میکنه میخواد را قبط بکنه را آیا واقع این تفکر نسبت با الله جل و درسته؟ این دانشمند من, من دیگه آیا رو ادامه دادم. در بحث خلقت و اساس آفرینش، وقتی که الله جلو بحث آدم میکنه میگه و یا آدم اسکون انت وزا و جو کل جنه. ای آدم تو با در بهشت زندگی کن فا در بهشت آدم و حفاظ زندگی میکنن بعد این درختی هست، الله میسازه اونجا میگذاره میبهی هم داره، میگه آدم نزدیکی درخته نشد میگه با خودم این آیات رو که داشتم میخوندم یه فکر کردم بین اینکه چرا خداوند دور برای اون درخته منعغول نذاشت چرا حساری نگشت آدم بشناسه چرا میخواد آدم برسه به اون درخته میازو میوه بخوره میگه که خداوند هدفش این بود که نخوره مرتکب اون اشتباه نشه که اصلا من میگرفت نگرفت لیگ الله جلوشو نگرفت یعنی الله میخواد تو گناه بکنی معصیت بکنی نبی اینکه که تو رو عذاب بده این تصور اشتباهه دوست الله جل تعالی این حدیث رو نگاه کنید حدیث الله جلاله علیه مجیع الله جلاله علیه مجیع که چنانچه در حدیث داری رسول صلی الله علیه و آله مجیع که رسول صلی الله علیه و میفرمایند: والله إلا الله عشاد و فرح به تو عبده الله خوشحالیش به اون بندش بیشتر نسبت اون بندی که کدوم بنده بگم بندی که با توشه و کلی بارش رفته یک درختی سرها دوگون بعد عصا بیار و جیم حالا زیکه سرعتی آد. یهو بیا بشه شوترش رو نمیبینه از شدت خوشحالی وقتی که شوترش رو پیدا میکنه میگی یا اللهم من تعبیه آن را بارل تو بنده منی و من خدا تو اخطاء من شدت الفار. هشتده تو خوشحالیشون میگه کسی که توبه میکنه و خدای خودش به هر میگه آن این خوشحال میشه. الله مکاتل مورد مشمول رحمتش واقع میشه نه که تو ربط داده تو بده. بس توبه وارد جلوتر باش بعدش ورایتی گذاشید چرا بیا و رحیم چرا اصلا ابتدای دوبار تکرار میشه سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم بعد الحمد لله رب عمد... الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم بحث عذاب؟ اساسا بحث اساسا شکان عذاب خشم و غضب و اون چیزی که ما به متلقی کردن اصلا نیاز داره به اینکه بدونه این کار تو را به جای بد میکشونه زنا از قلبه او بس میگه آقا دیگه آدمو بکش بهش بی... میبرم اینم بهش برای تو میگه خدا این بگه پاداش بهت بیدم آدم بکوشی یا نه اگر آدم بکشتی؟ خودت هم روزا که قصاصش از خواهیم گرفت؟ کجاست ظلم؟ ظلمه ای؟ یا عدله؟ این نوایت عدله این عدله الهیه شما قصه آدم رو نگاه کنید برید ادامش شو بخونید در سوری البقره چی میگه الله جل و عالم نسبته به آدم زمان که اشتباه میکنه؟ اشتباه کرد آیا قومتش کرد؟ آیا در جهنمش انداخت چی کار کرد فرصت به اشتاد فتا لقا آدم و ربی کلمات فتا و آدم اونجا اقرار بیکنه به اشتواهش اقرار بیکنه به ظلمش ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تقبلنا و ترحمنا لنکنن و انا خاسری بلالله شور زرشدی منو حوابا ما رو به حقیر نبخشی ما جزت بحکارانی نیم ما رو به ف كلمات فتىاب عليه اِنّ هو تواب و الله تنّ تواب کجاست الله میخاد الله خشنداری میخاد میخاد حلب و میخاد الله عبادت با دمایی رو میخاد الله پاکی رو میخاد پاکی رو دستاره. الله تقوایی رو دستاره پاکان رو دستاره. گروه میکنه کرده میکنه از اون از اون قلرتا از اون کینه ها و بغض که سبب تهمات غیبت، تهمت و لنامومی میشه قلبش رو پود می‌کنه الله ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین الله دوست داره متطهرینی که وزو میگیرن سر سجده الله میذارن سر خم میکنن برای الله و فرمان الله رو اجرا دوست داره اونایی که رفتارشون رو پاک میکنن و قلبشون رو پاک میکنن از بغض، از کینه، از حسادت، از دفرات ولی مسلمانی این این اللہ؟ اللہ و و تو را از ما داریم آیا مورد پسند الله؟ الله جلاله چی میگه؟ در برای چی میگه؟ چقدر ما و گذشته قصه یوسف چی میگه؟ قصه یوسف تا خبره چیه؟ تا جایی که تو صورت برادرشون میگ بنیامین دوستی کرده برادرش هم از و سکوت کرد. یوسف بروش هم نمیاره فاصله ای یوسفی نبست. یوسف میکنه. اصلا نمیاد بروش آن بروش نمیاد. دخو الله و میگه. یوسفی در نفس خودش نگه داشت میتونه عالم. این انسان ابرازشام نمیکنه. بعد دعای محبورت را قبل کرد به بعد صلامت ما تو دان خار شدی زندانی شدی. قبل ازی طلب و درخواستی میکنن برای بخشش یسوه جلال از الله جلال اعلا تقاضی مغفرت داره و داراش میکنه چون از قدر پدرش بهش گفته بود شیطان دشمن انسانه شیطان عدوات دشمنی میدازه پس اینها یک نمونه ای از اون علومی هست که الله جلال اعلا به ما بازگو کرده که سلم شده این سال این فریخته و این دانشمند مسلمان بشنیم سبحانه اللہ بحمد سبحانه اللہ بحمد و